بسم الله الرحمن <سؤال> الرحيم الحمد لله رب العالمين الله على سيدنا محمد وعلى اله هو العليم الدرس الثاني المعارف الالهيه الیف العلوم ulum با وصول الدین ما داریم در این درس انشاالله راجع با کل آمزه های اسلامی که می توانیم و یک تعبیر یا به یک دسته بندی خلاصه و نسبتا ساده دسته بندی کنیم کل معارف اسلامی رو میتونیم بر همه سه دسته دسته بندی کنیم درست انشاءالله تعالی یعنی شاخه های زیادی میتونه داشته باشن ولی اگر به شکل ابتدایی یا مجموعی بخواهیم همه معارف الهی را در همه شاخه ها وارد کنیم قابل شدن هست درست؟ المعارف یعنی جمع معارف که از خودش جمع هست جمع معرفت هست دیگه درست؟ معرفت به عنه آموزه شما در فارسی معمولا آموزه میگه مثلا وقتی میگه معارفه الهی آموزه های الهی اینطوری بگیش یا آموزه های اسلامی آموزه های دینی یعنی اون چیزی که ما باید بیاموزیم و علم پیدا کنیم درست شد؟ معرفت پیدا کنیم درست؟ خواهمیدیم؟ المعارفه الالهیه یعنی آموزه های الهی درست اون علوم الهی به تعبیر دیگر تمام فامید خود اون بان چیه؟ خب این المعارف الالهیه یک بار ما خود کل همه معارف الهیه رو دستبند دمینیم بار بعدی یک شاخه های این معارف رو دستبند دمینیم العلوم دینیه یعنی علم های دینی یک اصول دین، یک نه ببخشن، الاول اصول دین، درست؟ یعنی اصل ها و ریشه های دین اصول چه اصل، ریشه رمکن ریشه رمکن، بیخ، درست؟ آه، اونمو خوب نیست، نمیگن بیخ تو کندشه اینمیست، خب اصول دین یعنی اصل ها و ریشه ها, ورشا ها. خمسه اصولین اصول, خمسة اصول دین اصول چند تاست؟ پنج تا همان دو معروف دو؟ خمسه, خمسة. آه. خمسة. آه. دو فروع الدین فروع درست؟ علوم دینی دست اولش اصول هست دسته دومش فروع دین هست. فروع دین عشرته. فروع اهمه. ده دانه. فرعه مهمتر. اصل فروع مهمه معنی؟ نه. فروع به معنی شاخ و برگ هست. یک اصل داشتیم بیخ. ریش. این دفعه از اصل و بیخ گرفتیم بالا در شاخ و برگ میرسیم. درست شد؟ منطقه از این شاخ و برگ ها بازشان مهم دیگه واکن. درخت رو که نگاه کنیم، یک امون تنه اصلیشان اگر نباشه دیگرهایشان باز نیست دیگه نه؟ همینطور بازم وقتی از تنه اصلی که یک دانه درخته بالا در قسمت شاخ و برگ میرسه حدی یک یک شاخ شاخچهشان یا دو شاخچهشان خیلی چی هست؟ بزرگتر هست نسبت به شخ های کوچک کوچکش پس اونایی که بزرگترن اونا نسبت به اونایی که کوچک دارن نیست هست؟ ده دانفر را ما به عنوان فروع مهم برمیشوندیم درست شد؟ این ده تا فروع مهم همو فرویدین معروف هست بلد این دیگه نه؟ آره اولش نماز و آخر چیزه نماز نه یا چونگر؟ توله و تبره توله و میکنه چی میگیم؟ ما و شما یاد داریم همه دختاره اول نماز دوم روزه خیلی عالی. ببین اینا را یاد داریم ولی واقعا نمیدانیم که تولا و تبره را ما شما اصلا پیاده میکنیم یا نمیدانیم متاسفانه چند مدت شده یا چطوری بگیم همه مسئله تول... تبرایشان شان مورد دست قرار گرفتن یقد می اینشالله با زمانی که در اونجا خوابی رسیم در بخش معارف روی این باید بیشتر صحبت کنیم بیشتر باز شود در این اینشالله تا در این آخر متاسفانه چون مشکلات با وجود آمده و از طرف دیگر در امر بمعرف و نحی از من کرشم زیاد جاندار نیست خواب به هر حال سو من علم دینی اخلاق دین الفبائل و باید ها نباید ها یا فضیلت ها و ها یا خوبی ها و بدی ها یا باید بود نباید بود خوب ها و بد ها ره آره، فضایل خوبی ها رزایل بدی ها یا خوب ها و بد ها مشکل ندار متوجه شدیم؟ آره. آ. دقت می‌کنیم که متوجه نشدیم. آره. در فضل مثلا از جمله ها راستگویی است با وجود که واجب هم هست، صداقت. درست شد؟ باید صادق بود، نباید کاذب بود. صحیح شد؟ آره معنیش اینه که ساعت آره. توازن و فروتنی فضیلت است. تکبر و خودبرتربینی رذیلت است. بعد است. درست همین دیگه. خب حالا ما فهمیدیم که چه علوم دینی در کل چند تا سه تا, سه تا. یا اصولم یا فروعم و یا اخلاق. هم اخلاق. اخلاق ما انشاءالله در زیل همه واجبات دینی تمام همه علوم دینی رو, رو حداقل با اسمش آشنا خواهیم شود انشاءالله خواهیم. درست شد؟ پس از اولش که اصول دین باشه باید شروع کرد درست؟ با اصول دین اصول دین یعنی چی یعنی العقائد عقائد جمع عقیده عقیده به معنی عقد و گره درست شد؟ آره پس وقتی میگم عقائد یعنی اون گره است که ما محکم بهش بسته شدیم و نباید هیچگاه این گره باز بشه. همین که این گره باز شد معنیش اینه که ما هم افتادیم. درست؟ در فر آدم اگر بیفته اشکال نداره زیاد. درست شد ولی اگر از بیخ افتاد آدم نه. ببین فر اگر افتاد زیاد مهم نیست. یعنی اگر یک درخت شاخشه از بین بره زیاد مهم نیست چون اصلش هست. بازم میتونه شاخه بی رویانه. ولی اگر ریشهش خشک شد دیگه چی؟ دیگه دیگه دیگه دیگه. پس اصول دین خدای نخواسته اگر مورد دست بورد قرار بگیره دیگه, دیگه قرار مثل اینه که خشکی دین دیگه است فامیدین؟ اینطور اصول دین یعنی الاغایت خب این اصول دین چگونه باید باشد؟ این اقایت چگونه باید باشد؟ عن دلیل و برهانی اصول دین تقلیدی نمیشه باید از روی دلیل باشد و باید از روی برهان باشد برهان شد. تقلیدی نه یعنی نگاه مثلا اگر بگه خدا چند میگه یک اگر بگیم چرا یک نباید بگه که چون فلانی میگه یک دلیل و باید دلیل داشته باشیم برهان داشته باشیم که واقعا خدا یک هست شریف نه اینی را اینطوری عقاید باید داشته باشیم خب اصول دین یعنی عقاید عن دلیل و برهان از روی دلیل و برهان از حد. از. روی دلیل و برهان سعی شد؟ خب باقیه شنبه بخونیم. الاول اولو، اثاثیه دو، الان. الثالثو النبوه یک سومیو، اثاثیه سومیو، اثاثیه سومیو، اثاثیه سومیو، اثاثیه سومیو، اثاثیه سومیو، اثاثیه الخامیزون المعاد سعیه شد المعاد این المعاد الف لامش کمری شمسی کمری المعاد الف لامش خونده شد سعیه شد همین طوره دیگه پس به پایان برسید کل معارف دینی را میتوان به سه دسته تقسیم کرد. اصول فروع و اخلاق. اصول دین یعنی عقاید اونم عن دلیل و برغان. لا عن تقلیدیل نه روی تقلید. اونم میتون اضافه کنید. لا عن تقلیدیل نه روی تقلید. سعی شد؟ فا اصول دینی چند تاست کم؟ خمسد خامسد خامسد خامسد خامسد یعنی پنجوم بقید نکنین خامسد یعنی پنجوم خامسدون یعنی پنجت هست الاول التوحید، الثانیو العدل، الثالثو ال الرابعو الامامت والخامسو الامامت ال نه خود الامامه آخرش وقف مونیم دیگه الامامه Oh. Sure? No. آه سیشوار الله على سيدنا محمد و آلها الطاهرين oh.